بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> از ای که این که مرحوم شیخ متعرض بحث در رشوه این که آیه خوفشون یعنی پساد هم داره و از مناسق میاره یا نه کلامی از بعد محاصرشون نور کنه من کلام خالی از اجمال نیست خود من هم عقیدن اینه که هی بگیم یهتمل یهتمل لحب نمیخواه مغللت در کلام به نظر من همون و لنه ها اگر به اننا ها گفتید شش کمتر او اننا که تهیه دوگو می آمده. در حال در آخر کلان بر روم در ش در اقتشونطر و تهدید ان کرن ها ماآوزتم و شبیه هستند ها و خوند زمان ع که حالا به زمان. این مد که فر میدن روشن نیست اگر معاوضه باشه بله و ج برای زمان. اما اگر شبیه باشه، حالا فرسون کنمیه لام نبوده و انها شما نظرشون این که یک هده است که شبیه همه معاوضه است و در شبیه معاوضه دیگه باز زمان نمیاد در معاوضه این ممکنه و راست هم هست مطلب این آقا باید اون مورد حساب بشه چون شبیه معاوضه است حکم معاوضه نداره به هر حال ما فرنشون نیدونیم آقایی که فرموده چی و هم همام مطلب اینشان چیه؟ خیلن وارد این بحث یکی بیشادی خیلی نیم کلمات اصحاب و طلبات دیگران به اصطلاح بحث بشیم تا اینجا رسیدیم که زواهر این است که در باب رشوه حرام است و این اضافه بر غرمت مقاضی هم مالکه میشونه برطوزه شد که ادعای اجماع هم شده این نمه کلام در زمانتشه به خاطر اینکه این, این تصمیف مگلانی کرده. این خاصی مجرانی کرده این زامن نباشه کلامی که الان در اینجا هست این کلام تسلیت رو چند بار به کار برده برای من هم روشن روشن نیست الان ما روی احتمالات به معنای نه اینکه احتمال عبارت این احتمالات, احتمالات علمیه ما خودمون مطلبی رو به نام تبیین نداریم یا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری و استاد رو میگن لا یوز منو به صحیحی فلا یوز منو به فاسدی ما قاعدهی به نامالایی و به پاسده نداریم اکسش هم نداریم اینا با عنوان یک روایت به یک دلیل خاص وارد نشده قاعدهی هم با عنوانی که انسان هر جوربه خواست تسریف مجانی بکنه جایز باشه و آساری از زمان نباشه همچی چیزی نداریم مگر مراد این آیان از تسلیف یه اصطلاح دیگری باشه که الان اصطلاحا میگن یا لعموم لقا... قاعدت سلطنه یا لعموم سلطنه اصطلاح این به کار میورن و این اشاره است به حدیثی که در عده از کتب فعلا پیدا شده به نام اناس مسلطون حالا امواله هم. بگیم چون من مسلطه به مال خودم هستم میخوام این مال رو با عنوان حبیر حبیر به عنوان عبر و حدیه به قاضی بدن مجانی من مسلطم به مال خودم با که هرجا قاعده تسلیث به تسلیث مجانی به قاعده المؤمنون مسلطون علی اموالهم باشه. ازش گاهی تعریض به قاعده سلطنه. آیا حالا من یه بحث اجمالی اینجا می کنم تفسیر ریشه فرصت بیشتر پیش آمد چون تو چون که اموال به بحث خواهد آمد. حالا اونجا. اونی که اینجا به عنوان فهرستوار و مختصر می کنم به قاعده تسلیف به این آیان و عمون سلطنت بحث کنیم یکی مدرک این قاعده است که همین کلام مشهور اناس مسلطون علام واده سابرانزان در موادسون تحبیر اشاره کردیم که خیلن در مسادر حدیثی ما و اهل سنت و غیره این چیمت رو ما نداریم اناس مسلطون علام واده ما اولین باری که در میرازهای خود ما یعنی شیعه این محسون داریم کتابی شما علی عوارالله علی معروف مالوی ضمن ابن حبیب جمهور احسادی یا احسایی احسا و لهسا هر رو درست لهسایی یا احسایی, احسایی ایشون در اونجا آوردن رو روز احادیثی که به 7 تا طریقی که ذکر کردهن میرسن به علامه حلی چون 7 تا طریق براتون ذکر کردن که برسون به علامه علی اون طرق سبر اینشان که همه زریفه یعنی مجهول کتون داره بعضیاش بالکل کل مجبول هم یعنی من البده الالخط مجبول بعضیاش نه این درجه جهالت نیستن نیمون باستن سر رو با اون بحث نشید. خود این آقا هم وضعه خیلی روشنی نداره حتی اخباری ها ایمام ساقدائق که احادیث زریف رو هم قبولی و حتی مثل صاحب کتاب وسائل که خب حتی از کتاب های نسان زعیف هم نعمل میکنه ایشون از کتاب اوال لالی نقل نکردن من این رو چند مرتبه توضیح دادن این هم مفیده تکرارش درم نداره مرحوم صاحب وسائل عمدن از اوالی نقل نکرده این نبوده که تساول باشه اه. مرحوم صاحب وسائل تو خاتمه وسائل اشاره میتونن که من از کتاب مشغوره نقل کردن بحثی دارن حالا اینجا نمیشم شدیم بعد از یک دست کتب که شهرت پیدا کردن و اون کتب نیست نقل نمی کنن. این توی کتاب وسائل در این چاپ جدیدی که مؤسسه آلو درکار 3 در چاپ مرموم آی ربانی جند 20. در اونجا این مطلب رو داره. اون رو خود صاحب وسائل من چند بار کردم یه مراجعه ثانی به کتاب نوشته واقعا ایشون شیخ خراسان و خراسان بود امور خراسان دست ایشون در زبان صفریه با اون تشکیلات اجتماعی کتابی مثل وسائل بهیته واقعا خیلی توفیق الهی میخواد در مدت 20 سال بعد از نوشتن یک بار دیگه مراجعه کرده یه مراجعه سوم هم داره ایشان در این مراجعه سوم حاشیه‌ی خوبی داره این حاشیه‌ی سومش، سه‌ومش سومش، بسیار حاشیه‌ی لطیفه ما همشراقه ما بود که این نکاتی در خود نوشتن کتاب به کار می که ای الان یعنی توضیحی نمیخوام بدن که این حواشی نسخه سوم منحصرا در این چاپ آلدوی آمده در اون چاپ مرمرا تو این نسخه یگین چاپ آلدوی این حواشی تقریه سوم آمده در اینجا که لازم در همین نسخه هست در جلد بیست چاپ مرمرا ربوانی نیست جلد به تسجيل دهی گفته بعد تغییرات پای ربعین یک شخص بزرگوار دیگری کرد ایشون انجام داده نیستم کار ایروانا میگه 4 پای ایروانا ولی کار منو ایروانا نیست اصلا که در این جا ایشون نیستی از بعد در خطوب داده که اعتماد نداره چند دفعه جمع عسكر این در اختیار صاحب مستدرک هم نروزه این یعنی مرحوم مستدرک نه در اول خاتمه نه در اول کتاب اشاره نمی کنه چون مرحوم مستدرک به اصطلاح به روایاتی که صاحبش نقد نکرده و آورد مستدرک معنی نمی دیگه اون معنی لغوی است در خلاصه‌رم توضیح شد من که توضیحش نیست. خب این چه بر قاعده از کردن کار مرحوم مستدرک مستدرک نیست همسار وسایل به اموالی اعتماد نکرد وقتی اعتماد نکرد نه چون از عجایب کاری نتیجانه ها جنوبی قدس الله نفسه که بسیار بزرگواره انصافا صبغ علی بزرگوار بزرگواره و این کار مستدعی بسیار کار سنگینی الهی من که از این بیشتر از چند بار نرسان که چاپ نشده و به سماع شنیدن مرحوم ابو جنادی حدثنا امام استاد ابو جنادی از قول مرحوم حاج عباس قمی صاحب مفاتی در یه دوست من حمام رفتن مرحوم حاجی نوری و استاد مصدق از صاحب مستدرک از حمام دارون با هم صحبت می‌کرد. ایشون شما من فرمودن که سنیان اهل سنت 500 سال را کتاب به جلال الدین سیفی صاحب نوشته شده نسبت دادن. بعد مرحوم حاجی نوری به من به پای عباس قمی اون زحمتی که من در مستدرک کشیدن از اون 500 ساله بیشتره. همین کتاب من راستا تا راست این طور مستلزم مثلا خاتمه خیلی پرفایده است بعد استاد رو فرض دوستان سوال می‌کنن که برای اول کار در رجا این خاتمه رو یه دوره ببینن خیلی مفیده فوق العاده خیلی زحمت کشه توی خاتمه مخصوصا تو بعدی نوازش مثل پرورزش خیلی زحمت فوق العاده‌ای کشیده مرهم حاجی نبود خیلی زحمت تصفه واقعا منم با عنوان من آذری آشنا بین قضایا حد رو به ایشون میده یعنی نرجس مرهم استاد رسول اش عباس هم مطلب درستی انصافا خیلی در این کتاب مستذره کی چون این عبارت حاشیه نسخه نسخه سال رو ظاهرا ایشون ندیده در این حاشیه چون میکنه من از عوال لالی نقل نمیدم اصلاً از عوال میبرنا انصافا این کتاب فوق العاده ظریفه من یه نرد فوق العاده ظریفه اشالات این کتاب خیلی بیشتر از چیزی که حالا تصور شده من نمی‌خوام وارد بحث این باشم اینجا نیست اشالاتیکی گزون نیست این حالا یکی از علما با عنوان که دانشکار کردن گفتن دوله عالی این دوله قالی گفتن اسمش قبولش تا تصیح نکرد قباله عالی البته این خوب دقت بکن نوشه خط خود مؤلف موجود عوالیه با اینه بعدی ها شده به جوادی و خود مرحوم مؤلف عوالی نمی‌شه به هر حال در کتاب عوال الله عالی که ما خودش همش بحثای صالیفی داره که هم به طریق خودش از علام نقل کرده ان نبی قال اناس مسلطون علا انواله از, زمانه، از قرن زمان از قرم ده هم بعد از نقصده اکثر نقصدی داری، که داریم داری اجازاتیشان که به خط خطیشانه 890, 881 تا 898 اجازه یک اجازه 96 باشه 95 باشه نکات ایشان یک چیزی بعد از این تاریخه یعنی اوایل قرن دهم ایشان از روزگار قبل از اینکه صفویه به قدرت اون تمامشون برسد ایشون این کتاب شده اثر آثار ظرمدان زمان انصاف الله غیر از اینکه حالا ضعف داره از اون زمان در عده از کتب یواشوش را پیدا کرد به این بحث افترض که جبر ضعف سند منجزه بر عمل اذهام اصلا سندی نداره من اعتراض میکردم سندی نداره که منجذر بشه انت کرد از ایشون در قرن دهم هم از علامه در قرن هشتون نقوم میکنه در هیچ کتاب علامه وجود نداره و انت کرد از اینه که ما مثلا تعبودن میگیم بعضی از اصلاد مطالبی در اختیارشون بوده یه تعبودی برای مثل علامه حتی اگر علامه در کتابش که قال نبی و الان در مسادر ما نراشه قطعا تعبود شاملش نمیسید سرزی چیزی که درهی هیچیه که از کتب علامه این عبارت با عنوان حدیث وجود نداره اناس مصادتون الان باره مشکلن حدیث بودن شوشنه چه و رسه به انجبار اینم انجباری که بعد از اوالی بخواد پیدا باشه خب خیلی واضحه بطلان این تفکرات فوق العاده. خب حالا آقاون هم چیز با این که ایمان دارن که حدیث زدیفه یا من این که ایمان بحث مهمتر که به درد ما نحنفی میخوره مبدول حدیثه ولو ذهن ما اصلا فایده من روشون حدیث ثابت نیست خطعا جایی بحث مبدولی نیست و که چون اینجا طلبه تسریط مجانی و بعدها در جلیگه برده شده و یه بحث حقوقی هم شده این که مفاد حدیث چیه احتمالات یک که به اصطلاح گفت که اوسط اداره احتمالات بين ما و از مراد از حدیث اثبات سرتقد نیست مراد جدی حدیث رفع حجره محجور با حی خوکی یعنی مردم محجور نیستن سفیه محجوره مجنون محجوره صفر محجوره مردم محجور نیستن الناس مسلتون علیان بولهن مفاد جدی شینه که مردم ما مح... اما این که چی کار میتونم بکنن تصریف مجالی میتونم بکنن مثلا ناظر روی اینجا اگر تصریفی انجام دادن اون نافذ ناظر روی دقیق دو رأی دو این مردم محجون نیستن اضافه بر اون سلطنت هم دارن یعنی چی؟ یعنی میتونن در مالشون تصرف بکنن انهای تصرف لکن سلطنت مردم فرعه اجازه شرقی یعنی به عبارت دیگر معناش اینه هر نحوه تصرف شرقی رو اجازه داد مثلا بهِ رو اجازه داد اجازه داد اجاره رو اجازه داد آریا رو اجازه داد ولی اگر یک نحوه تصرف شرقی رو شعره اجازه داد در اونی که اجازه داده شما میتونید تصرف بکنید مثلا شما که در اموالتون به انجام بدین شو، شار اجازه داده، اجاره انجام بدین، انتفاع انجام بدین یا انجام بدین، در اون دایره ای که شار اجازه داده میشین تفالف بکنید. این معنایه است که مرحوم استاد آی خویی ترجیح میدن در معنی است سه اون معنایی که بذات قاعده گفتن در ذات قانونی میخوره، حکم میخوره. ما اون که بگیم؟ نه، مفاد این حدیث مبارک به اصطلاح مهمشی خود دیگران مشرعه چون شما مسلط بر مالی هست، مالتون هستین هر جایی هم که ثابت نشد شعر اجازه ده هم داره انجام بگیم این بسه بگوی داره این کردان تو دانجا و مالتون بگوی که اینه ببین با اناسون سلطون علا انواله این اقودی را که مشکوکه اثبات سه حق مثلا بیمه بحث بسه محروف دلانه. شما که رو بیمرشتر اثبات بکن چون میدونه ازده بیمه رو عقد مستقل میدونن مثل مرمون استاد بیمه رو هبه معوضه میدونن حبه مشروطه به ذهن خود ما که همه عقد مستقل از سر تا یه نوع حبه مشروطه میدونن اما خب ازده برام عقد مستقل میدونن یه راهی که برای و لذا این بحث رو هم مرمون شیخ داره در بحث اساسی و لزوم یکی از راه که ما عقود مشبوط خیلی عقل ها این شرکت که امزو درست میشه خیلی این عقل های مشکل رو بیاییم با اناس مسلسونه علا انوالهم درست میکنیم اوچنین شد نکته فرقیه من که مسلسم به مال خودم شارم که نهی از بیمه نفرمیده روشن شد ما بیایم با اناس مسلسونه علا انوالهم به قول برزا با عموم سلطن هست من حق دارم بیمه رو قرار بده مال خودم اینطور با اناس مسلطون علا انباله اثبات صحت و عقود مشکوکه بکنه هر رو که شعره نه کرده جای خودش، قیلتون اگر شاره نه نکرده در هر زمانی ما مطبع شدیم دیگه مسئله مثلا تسیط مجانی من حق دارم تسیط مجانی بکنم طبیه به قاضی بدم به عنوانی که قلبشه خلف بکشم که به من حق بکنم این تحصیل مجانی دلیل من برای این کار رو من حق دارم ارناس مسلطون علام من مسلط تو رو کنم ظاهر عبارت مرحوم سریعزی صاحب ارده در هاشی مقاسب اینه ظاهر مرحوم سریعزی که ارناس مسلطون علام باله به درد اثبات مشرعیت مشرع بیمان عبود مشکوب رو همون شد تحصیل بکنه استعمالان کسانی که در اینجا بحث تسلیط و مظهر و تслиط مجانی نظرشون به این رأی صالح باشه من می توانم به قاضی این سلطه ای که من به مال خودم دارم من می توانم به قاضی این مال رو به عنوان هدیه بدم که جلب محفلش با نفع من حکم بکنه تслиط مجانی این تслиط مجانی که آمده احتمال می‌دم البته ما در حد احتمال یادی ندارم به اینکه تأمینشون نظرشون به آن ناس مصلحتون علاو اموالیم. البته مطلبم فقط یک یک باقل ناروی یک ساتی بعضی از موارد دیدیم ادی به آن ناس مصلحتون علاو اموالیم خناسوی کرده. گفتم خب به طریق اولا مصلحتون علاو انفوسه هم. آقا گیز نخود حدیث مبدأ درستی در داره. تجوابش را به آن ناس کلیه خودشی برخورده. این برسه معروفه خروش اجزایه بده چون اون مال جدای از انسان اصلاح هم به ذات خود میکنه مسلمدوشی میشه ده قسم باید تیگه اگر این مطلی خود اصلش ثابت نیست چطور به اولویت دیگه خیلی مشکلش میشه به امواله، به امکسه و به طریق اولا حق در مقام اینکه حدیث ثابت نیست و این احتمالات هم چندان به درد نمیخوره و طبق قاعدهی که ما به طور کلی در کلام داریم تا به حد ظهور نرسه نمیتونیم اون مقداری که با قول آن حالا قدر ما تیقدر ازش استفاده بکنیم اون مقداری که بسنیم نسبت بدیم نه حالا زهور بشه در حد احتیاج فقط همون معنای اول رفع حجره بیش از اون دیگه در ندیم پس این تسلیط مجانی که شد در اینجا پرمودن خودش یک دلیل واضحی نداره اون مسئله مالایوزمند صحیحه یا مالایوزمند مرون شهر مالایوزمند در حبه فرمودن خود اون هم دلیل واضحی نیست پس ما هستیم و با مجموعه ادله در باب رشوه اگر این آیه مبارکی که اینجور آخر بحث متعرض میشین در رشوه باشه خود این آیه برای تصادر شکابیه لا تأکل و اموال کن به باطل و به وقت خود دوبه ها الال و کام اصلا تأدیرش خیلی شون میگن معانی محسو... معبوله معبوله اصدار معانی محسوسه بودن الفاظ برای معانی محسوسه بوده بعد در معانی محبوله به کار برده کلمه رشده از رشاست معنی تنا مثل مدروره برده از کردیم خیلی پارسی اینوزی صحبه از که شاید رشده ترسومه به رسانه شون میگه رسونه اصلا مثلا کلمه رسانه بیشتر میگه درست. رشوه از تناب این درم که در اینجا آمده اونان و آبه و تود رو خیلی ارچیده و تود رو خدا آیه مبارکه با همه منه تناب نزدیکه تصادفا خود آیه مبارکه در معنی محسوسش نزدیک درشته در معنی محسوسشه یعنی که هم نما یک دربی سه انسان میدازه آب از شاه میکشه این پول رو میدازه که آذیر نفو با, با هم تحبیره دل تناب بشیم خود پس دل بشیم خورتن. پس این داد ترکل و انبال بین کن به باطل تفسیرش هم گذاشت که ترکلاتون میکنیم انصافا اکن ما به باطل به این معنا که سبب باطل باشه بلکه به این معنا که به اضاق باطل باشه که ما هم در جامعه بین ما. معنی انصافا مشکل نداره و مخصوصا اگر از کان یه شبه است که آیه نازل میگفت مطلب دیگه به مولای ایهام بوده باعث یه حل بعد اگر آیه رو برش بزنیم به راحتی از خود آیه مبارکه میشه مطلب رو درو اما مسئله ای که مرحوم شیخ فرمودن روایات صوف صحت، صوحتن به نظر ما انصافا دلالتش بر بطلان و عدم مالکیت خیلی واضحه چون خود صوفرا نه حلاکه یعنی کار آیاتی که میگه الگین یعکلون انبال الیتاما انما یعکلون فی بوتون هم نارا این مثل اون میمونه صحبت پول که قاضی با عنوان رشدگیر حلاکه خب قطعا محکومش این است که این داخل در مالش این این, این آتشه این معبول نیست که به اطلاقات اناس مسلسونه علا انباله هم اثبات ملکیت دارش بکنه بله بلکه زمان هم داره اضافتا لازاله روایات که میگه و امر رشاش له صاحوا الكفر بالله العظیم هم به نظر ما دلالت میکنه. قال الان العظیم. چون این آیه مبارکه نشون میده که رشوه، ده تاس رشوه هر ما انسان پول بده برای تغییر شریعت. کفر بالله العظیم معناش اینه. این مثل آیه مبارکه تعظن به بحر من الله و رسول در باب رب فازن به حق من الله رسله. یعنی به بهارته اخرى این نوع چارم از کلمی که ما اون شیخ داره شیخ میگه بزد پول به ازای عمل حرام باطل نوع چارم مکاسر محرمین اخذ و دادن پول یا اجرت به ازای عمل حرام اگر به ازای عمل حرام باطل باشه به ازای کفر چیه <تصفيق> به ازای حرام لذا عرض بعد بعضی اصلا هدف خسر چار... چون نمیشون مکاز محرم خنج نوع قرار دادن نوع اشارون بزل پول بشه بزل ماز بشه به اضای عمل محرم پی نفسه مثل اینکه مثلا پول دیگه دروغ بگه که هر که که که قیبت بکنه. غنا پول دیگه بگم باشه اگر در مقابل یک عمل محرم بزل پول حرام باشه و آن قرمت در این جورجه ها مراد قرمت وضعی هم هست طبعاً در مقابل کف این خب خیلی بالاتر فرض میشه قابل, تصف... تصف... قابل مقابل نیست با اون طرف پس اولاً لا تأکل و اموالکم بینکم بل باطل خود این دلالت میکنه غوایات صحب دلالت میکنه این نحل کفر بله العظیم یعنی بحل مال در مقابل نقی شریعت من به که روح از ارض کردم اینه که در رواد در المؤمنون اندشورت این دار شرطا احل میگه آن شما نمیتونیم با المؤمنون اندشورت این کاری بودید در مقابل قانون بیسی یعنی شما نمیتونیم با انتظام شخصی در مقابل قانون بیسی چه برسته با التضام شخصی که اینه که بکتر <تصفح> اینه باقابل قانونه حالا از عواملی که, که سنان توی حدیث اشاراش دادن مثلا گفته اگر مؤمن بشه تو قبول کنه مثلا من کتاب بخونم شعر کنم کن شراب بخوره خب دیگه نمیشه این جواب میشه واضحه اصلا قاعده المهم ده شرطی که خلاف قانون نمیگیره توضیحش هم دقیقاً هست اگر شرطی که خلاف قانون نگیره نمیگیره میتونه این اطلاقات مثل هبه و عناص صدتونه در جایی که بض پول برای تغییر قانونه نه بی قانونیه یعنی امروز به عنوان اینکه که این کسی بخواد جاسوسی بکنه میگن مالک اینجور پولی که از رای جا جزار. حالا پولی قرار بوده به عنوان براندازی نظام بقید بکنی وقتی میگه النهل خوف به الله العزی فقط نظر, نظر اتضایی به با عظمتشه با که این وقتی میاد توی مخواد قانونی این شامل حرمت خود پول هم میشه ولو وزن نه بقید تکیفه این نیست که فقط حرمت دفع باشه حرمت, نب... حرمت به اصطلاح حرمت نباشه یا زمان نباشه وقتی بیان میگه این در مقابل کفر یعنی به هیچ رجع این پول اعتبار نشده این یک، دو ما ارز کردیم یا علالیت ثابت نیست اما این که اجمالا کسی این عرف اغلادی داریم کسی مال و کسی رو بدون اجازه یا او بگیره او دقیق مکنیم نه علالیت مثل آریه با اجازه و طرف شد این طلب اقلالیه و با یک توضیحی بود که من نگفتم. این احتمال بود چون خود حسن بستی از زبادش برگرسته من نگفتی برای این نگفت. احتمال هست علاویت ماه اخردت این ماه اخردت قصبن نمسلقه احض. اگر علاویت رو اینجور من رو بکنیم این هر کسی مال کسی رو بدون اجازه او دقت بکنید من بیام تو خونه شما عبای شما رو بدون اجازه ببرم تو خونه بعد شب بیاد دوز بره ضمانت یعنی بدل شوباز رد بکنم این اوغرائیه من فکر می‌خوام هم مرمو استادان از معاصلین نوشتند که این قاعده اوغرایش برادشون اینه مقدار اوغرایش ایناست نه مطلقاً مقدار اوغرایش اگر اخذ اخذ قصبی باشه بدون اجازه باشه بخ در جایی که شاره میاد میفرماد این کفر بالله العظیمه گرفتن این مال درست نیست چون شاره که اجازه نمیده اناس ناس مسلطون علی هم اصفات نمی کنه که طرف میتونی این کارو بکنه سلطان ندارم چه سلفی <تصفيق> از خود کو... دقت بکنی از کجاست مکلف سلطه داره به اصلاح به عنوان تصریف مجانی یا با بایدنها شبیه معاوضه در مقابل کفر بالله عزیم بده و این تصریف مجانی رو شارعه امضا بکنه روشن تو چیم حالی کنیم؟ ما اولان ناسون سلطون الان بالهم نداریم هم چیزی ثابت نیست و تصریف مجانی در جایی که مقابل کفر معنا ندارسته و کی چه رفت؟ ما امروز قرارو تو بحث بشه کردیم بحث این که یک جای رشوه باشه و حدیه مثل اجتماع رو نه نیست. اشتباه نگیرید. مثل صلات و قسط نیست. چون صلات به عنوان ها مأمورم باست. به است. قسطم به عنوان مالیون عراض. رشوه عنوان نداره. این نکته خنی رو دقت بکنید. حدیه عقدیه عنوان داره اما رشوه عنوان نداره. هر پولی که به قاضی داده میشه دا که به نحوه توقف میکنه به نحوه هدیه بشمیدی به نحوه معامله محاباتی عنوان نداره مشکل کار آقایان اینه اینا خیال کردن که رشوه عنوان داره مثل هدیه و لذا مالا یزمن به سنگی لا فاصله به فاسده اینجا جای قاعده مالا یزمن این قاعده که که نیستید دقیق بکنی رشوه عنوان نداره شما اینه عبد و عن نه هده است این اما همون هده رشت اموز بود بر بودید جای دسته اجتماع همون نحیم چون رشوه عنوان نداره هر پولی، هر چیزی بله اگر معامله محاباتی بود رشوه است اگر هدیه بود رشوه است اگر با عنوان نرشوه باقا با عنوان رشوه است بازم رشوه است رشوه عنوان نداره لا تاکلو بین اموالکم بین اکم بین اکم با گفتیم مالا قراردازه بلباطل و تدلو به هایلالحکام که در نیجور افده خب بلا اشراحه یه قراردازیز به نوزه لیکن با این قرارداد تدلو به هایلالحکام نیسته نیسته و اون قاعده ای کما لایزم به صحیح لازم در این که و لذا ذهن ما در تمام این موارد همه حرام هم فاسده تو <تصفيق> <تصفيق> در همین مراقبش کفردیمه؟ ظاهرش این طوره <تصفيق> خب وقتی فاسد شد و قائلی علالیت رو نداره آهلایش قبول کرده اون زمان درست کنه چون از که این قائلی علالیت اخذت و اهم گرفتن از قصب و غیر قصب مثل آریه ما اشکال ما در غیر قصبش میده در آریه بود اما جایه اخذت قسلا باشه اصلا این مورد دیگه حدیثا همین بوده علی علی ما اخذت این قسله مثلا ظاهر اخذان قسله وقتی خود مالک بده میگن اخذت خود مالک داد مراد از اخذ این طورنا گفت مناقشه روز در این چون صباغن وقتی خود حسن برمیارن برعکس یه بریم مناقشه نکنیم که به ذهن خود ما هستی اینه و نظام بعضی نشان قاعده عقلاییه به این معنی که قوافه به معنی نیست اما به این معنی که من میگم عقلایی راست این معنی عقلایی هر کسی در مال شخص دیگری بدون اذن او کرد و گرفت و تلفش زامنه این, این قاعده عقلاییه راستینه قایده علیا این جور معنی عقلایی این قاعده عقلایی پس بنابراین به ذهن ما تمام این موارد درشران و تمام این موارد حرام و تمام این موارد هم اگر این مال موجوده باید رد بکنه این مال هم که موجود نیست باید بدرش رد بکنه با ملاحظه ی روایات رشوه، من احتمال بیدم مرحوم شیفت یک مقداری مثلا شاید اینجا کون در حدیه قبول نکرد که بسا فاسد باشه و زمان بیاره اما خیلی به نظر ما عجیبه این یک مرحوم شیفت دیگه بعد محروم میشه خروعی رو در اختلاف دافع و قابل بطره گردن سه تا تر رو محروم شیف در اینجا آوردن که ما دارم بگیم برگوارد برد هر اول لوده دافع انها حدیدتون ملحقتون به رشرف حساد و الحرمه ایکی از اجایب کار اینه ایشون در اینجا محرومان گرفتن که حدیده فاسده قبل گفتن باید فاسد بیتما نفرمید این دیگه چیزیه خود مرحوم شیخ قضا فرمان هدیه اگر به قاضی هدیه داد هدیه اون فاسد لا بود مگر مرادش از فساد فقط رده این باشه نه بدن الا انصافا خیلی درجی از کلام شیخ علاوه بر اینکه شیخ تا 3400 یه دفعه اصلا بر ما هم عیون همین بود الان گفتیم به نظر ما هدیه ان که باشه هم حرامه هم فاسد هم زماناوره لکه این تحجیب شیخ در اونده در حدیه چیز گفت اینجا عوض کرده بازشون خیلی عجیبی لعده از دافه انها حدیه و ملحبتون به رشوه خساده بله هرمه لعده القابض انها حبتون صدیهه این سر اول نکتش که هر دو اتفاق بر اصل عقل دارن اتفاق بر جنس عقل دارن اختلاف در نوعش یا در سمشه بوله ها، فقط اون دیگه نه هر دوشو میگه حدیه حدیهتی که میگه هدیه کاسته ای میگه گهدیه ثری مثلا سعیاتون لذاد قربه و غیره مثلا تو رهیمه هرچی به هدیه دادن قاضی قاضی میگه آره درادرش من پسر هموشم به من هدیه داد هدیه خودش اینو واسه تو قاضی گفت دست برنخن حکم کن این هدیه کاسته بوده احسن له تقدیم مول امر اون که میگه کاسته بوده. چرا لأن ذافه أعرف نیتی این ازته ایشان بله مطلبی رو ذکر کردند که این صغراش جای خود داره یه بحثی این بحثی من بعدش باز می‌کنن کل مالای عرف الا من قبل مدعی یغ بالقول هو فی کل مالای عرف الا من قبل مدعی ساقون هوکتسون فی کلمه منتصل و منتصل داریم کلمه‌ی متصل مبنی بر فتح ما انظاره است اما این کلمه‌ی منتصل کل اعراب داره ما هم دهانه علید کل ما لا یعرف الا من خبر مضری حالا این بحث انشالله من بعد یک توضیح میبینم بعضی از این قوانین درست کردن این به طور کلی دو تا کاربرد داره یکی در خصوص قضاوت کاربرد داره که اینجا مسئله قضاوت یکی مطلقاً کاربرد داره بحث قضاوت هم نداره مثلا به طرف میگیم پس اون با مثال اون مثال که به زن میگه مثلا شما شوهر میگن نه میگم کافیه کل ما بزن گفتم چه تو در یام حال نه حامله هستی نه الی مقام خداवत هم نباشه پس این دو تا قاعده است. اشتباه نشه یکی تو باب قضاوته از خصوص قضاوت حرق بین باب قضاوت و بیر قضاوت اینه در باب قضاوت چون تنازع هست ما معمولی تنازع رو برداریم. ولو یک مقدار که خیلی دریش شدید هم باشه. چون باید تنازع برداشته باشه اما در بین باب قضاوت تنازع نیست بگه توی اده هستی بگه نمیستن تو ایام هیز هستی میگه نیستن تنازعی مدره نیست. پس این قاله این کل ما لا یعرف الا من قبل قاله که گفته شده او منطبل به مدعی دو کاربرد داره یک کاربرد قضایی داره یک کاربرد مطلقی داره اسلام داره دایم یعنی تو کلمات وقتی می‌خوام اثباتش بکنم با هم دیگه خرج میکنن شما با هم خرج نفرمایید باب تساوت یک مشکل داره چون تنازع باید برداشته بشه پس قضاوت نکته اساسیش اینه چون من اکثرم کلام می‌رونن در بابه قضاوت چون به حکم قطعی و و عقلی تنازع مزر به جامعه است دعوا مزر جامعه جامع. لذا یک نهحی باید تنازع رو برداریم اما در بابه این حالا واسه شما در آزاد آزاد هست ولی مطرحی و لذا هر کدام برای خودش یک نقطه ای داره که از نشون در حالا در حالی که گلی میکنن اینجا او بین این دو تا خلاصی شده. ما دو تا قایق داریم. یکی در باب از یکی موسی لقان. تدیر قایشمون کل مالای لا یوره. ایلا من قیدال قائل هم هست، من قیدال مدری هم هست. سبهوه او لهو اون دیگه نمیخواد دلگینه بیاره. چون طریق ما خودشه. وقتی که خودش شد، دیگه احتیاجی به دلگینه نداره. خودش را آنجا این یک مطلب، میشول الله که اینطور رو براتون. این لحن داده عرب نیت اشاره به این قاعده است. دو ولی اصل از زمان فلیح، این دعوت کردن دعو یعنی به اصطلاح قاعده اولیه دو ما آمده. وله اقوات تقریم و ثانی حرف قاضی مقدمه لنهو یک در اسالت السهه در طرف قاضی این دو قول در اینجا خود مرحوم شیف ترجیه به قاضی به خاطر اساس سحه در این حالا غیر از اون مطلبی که از کلام شیف که امتحا داره جو خودش در این مطلبی که ایتون فهمنده من ایک نکاک رو اعرض نکنم که اینا خیلی نافعه قبل از این که بحث ش اینشالله تعالی بیدیم ما در عده از کتب و خودم شبل من اگه دومارتون باشه در خیلی از کتب مثل بی و اجاره و اینها مثل همین کتاب مکاسه محرمه خیلی از جه ها فروه اختلاف بین طرف این داریم مثلا بین اینجا بین به اصطلاح کسی که مراجعه به قاضی کرده به خود قاضی اختلاف شده به اصطلاح بردن به دادباه انتظامی و قضا جایی که خود رو بزرست محاکم بکنم این اختلاف ها ما در پرداریم یک نکته خیلی قابل تحمل در قصد بکنیم اصولا ما ادهی این اختلافات در کل بکنیم اختلاف میزونه بکنیم ما چه روایات داریم سه قصد نه، این در روایات ما یک درد از صورش مجیمه خیلی تفکیت نشده این یک نکته. و بعضی از روایات ما مثلا اگر در یک جایی که ادعا هست شیش صورت داره مجموعا دو ساش آمده چهار تزیگه شنه و ما صور اختلاف در خیل و کلن توی اجاره تجارت دید در خیل خودمون بیشترین جایی که این صور آمده محسوس شیخ توسیه قبل از محسوس نداریم اولین کسی که این سوار اختلاف رو به شدت برده محسوس شیف توسی چون تا قبل از محسوس حتی نهایی شیف توسی برنامه اصحاب ما بر این بوده که اون مقداری از سوار اختلاف رو که در روایت هست بیان خارج از روایت برشن اون چه که ما الان خارج از روایت باید فقط محسوس شیف توسی است بعد از محسوس شیخ توسی در کتاب مثل شرایع یه مقدار نسبتاً لابعصبه ها از این سوار آمد اما ایشون بیشتر سوار اساسی رو مطرح کرد ما علامه فسر یه مقدار بیشتر رو بردن بعدی ها پس دیگه مختلف بودن ادهی پیگنبال سی آب بودن سوار بیشتر کردن گایی ممکن از محسوس شیخ هم سوار رو بیشتر کردن اونی که به ذهن من میاد به ذهن خود برده و تخصیم اصل این تشریقات باید از قرم دوبار در سقه احل سنت شده احتمال من قرمی میدن که این تشریقات اقتلاعا در دادگاه های اهل سنت هسته سکت میکنیم چون دادگاه ما اونا بود صدر این که در کتاب ما کنه در روایات ما اینه این اختلافات در دادگاه رفت بعد از دادگاه برد اینالو بین خوزات اختلاف شد این رو دادن به صحنه ای الویزان به فوقها فوقها اون فروی اون که محل احتیاج یعنی واقعی شده بود برداشتن در خیلیشون عوردن لیکن اصحاب ما نعوردن اصحاب ما در قرن تنجا عوردن و اونم شیخ سوسی و اون هم صورتی ای که ایشان گاهی که یه از مسائل که اصلا ماره باید میسی اینجا که از ماره باید نداره. سه تا صورتی که ایشون اون فرمونده کلن رو باید بعضی جه ها که اصلا رو باید بعضی جه مثلا تنیز یکی جواب رو باید مشکل کجاست؟ مشکل اینه که گاهی اوقات روایت مجمله مثلا یه القول قول المرعه این القول قول المرعه ما دهها ها سر در سر آرزو بین زنان این سوال مطرح میشه در روایت ما اجمال آمده این معناشینه که ما محام در تمام این فروع یا اون فروع رو باید اصابت این یک نقطه مهم نکته خیلی, خیلی خیلی از اینها مهمتر نقطه این که کرارا از کرده مرحوم شیخ توسی این صور اختلاف رو با قوائلت خشیعه جواب بده یعنی صور رو اصل موضوع رو از خطوب سنیا گرفته صفق قواعد فقرشیه جواب داده اونی چه که الان ما درشی مشکل میبینیم این از این معلوم نیست به قواعد ما باشه ما رو یه شفت استعجال باشته اطلاعات مرزیه باشته چی روشون نامنه چی که به هر حال انصافاً واضحه. نیست لذا خوب دقیق بکنید خیلی از این خروجی که در کتب ما آمده در باقی اجاره پران اختلطه فلان و لده انصافش همزینش با قوارد مشکله تصحیحش با قوارد مشکله چرا شد که شد هر تمام شد یک ضوابط کلیه بحث تو مثلا همتون قبل از این وارد اختلاف بشیم این ضوابط فوق العاده مهمه. یک ذوابط کلیه فردای انسان الله تعالی متعرض میشه که خوغل آزه کاربوجه در کل احوالت و آرز نه